بخش فرد و اسری حسن آمد در خانه ما یعنی همیشه خدا می آمد. ولی حساب آن روزها فرق می کرد آمدنش بایدی بود این قانون بازاریاب هاست که باید روزی دوبار به تومهشان سرکشی کنن یا حداقل تلفن تلفون یا هر کار دیگری انجام بدهند که آدم را یاد بازاریابی بیاندازد فقط حیف شد که من آن موقع این کسافتکاری ها را نمی دانستم هر که باز کردم گفت چطوری میلیونر؟ جدمه جد من گفت میلیونر. گفتم من که چوب ندارم تو سر سگ بزنم خودتم که همیشه خدا نصف شیکم سیره نصفش گوشنه. میلیونر کجا بود؟ خودتو دست کم نگی پسر کار نشد نداره. تو اگه بخوای میتونی یادت باشه که همیشه طولانی ترین سفرها با کوچک ترین قدم ها شروع میشه. از حرفش سوغ زده نشدم اما بی هوا پریدم تو بغلش. دست رو از پشتار کمرش قلاب کردم و فشار دادم سینه هم رو هم به سینه اش چفت کرده بودم و زور می دادن. جوری که کمرش داشت خورد می شد. گفت چیکار داری میکنی؟ کنی برکن برکن عباس کمرم پشت می آ ها ای. مطلقا هیچ کار اضافه نمی کردم. فقط فشار می دادم برکن عجب ها برکن میگم گم عباس. کمرم لش شد تو داری پولدار میشی حسن دیگه چیزی نمونده فکرشو بکن به بهش چسبیده بودم ایجرای در روی نداشت نفسش داشت بند میامد اصلا کلن بچه کم نفس نصف جا نیست زیر فشار زیاد تاب نمیآورد اماس نفسم روانی به مزین که اولین فرش را پراند ورش کردم به امان خدا آنی نفسش رو چاخ کرد و یک مشت حوالی جناق سینم کرد که جا خالی دادم بهم نخورد. دوباره خیز برداشت که لگدش را پرتاب کند که زدم به چاک. تا وسط های کوچه دنبالم کرد. داد کشیدم. خب خب غلط کردم. غلط کردم. همه کارات مسخره به قرآن. این را که گفت خیالم راحت شد که دیگر لگدی در کار نیست. برگشتم روی پله‌ی جرای در نشستم. و هم با فاصله آمد و کنار دستم نشست. گفت: حالا آره این مسخروازی در بیار. بیا ببین بقیه چجوری دارم پول پیدا می‌کنند." همین دیروز مجید این رفتم واسه هیدر یه بز کوپه دیدم هیدر؟ هیدر کیه دوباره؟ والا سری مجیده تو تکونش نمیده به اول فصل اه مگه از مجید گندهترم هست؟ احساس کرد که کمی مشتاق شدم خوشحال شد آره بابا خیالت همین مجید تنهاست؟ تا خود کمپانی همین طور آدمی که هست مجید انگاشگوچیکشونم نمیشه یکی هم از یکی پول داردن. پولاشون رو بزنن تو گونی بار خر بکنن خر میخوابه این دیگر چه سیقی حرف زدن است من اگر بازاریاب میشدم این خودم رو مسخره این نمیکردم گفتم الان این هیدهره که میگی چی سوال میشه؟ زانتیه خشک همانشم کم نبود مگه چه است؟ نتوارکره همه پولاشو از همین کار در آورده ولی درس دکتری هم میخونه اونجایی بابای آدم دروغگو به خدا دارم راست میگم دروغم در چیه؟ فوشدانی راست میگه هسن؟ آره به پیغمبر خودم یه نزدیک دیدمش از نزدیک نزدیک؟ آره اونایی که موبایل داشتن چیک چیک ازش عکس میداختن حجب لاله چی هسن؟ لاله چی داره؟ سوال بیماغی کرده بودم نباید به این زودی نقط زفت دسته هسن میدادم ولی نشنیده گرفت لاله دویزشیش داره دیگه که دیدی؟ البته اون شو از قبل قبلشته اگه کجا میدونی؟ میدونم دیگه بهم گفته ای کلک اگه باش حرف میزنی؟ بادی به قبقه بشن و گفت بس چی؟ من تا ده که باشه حرف زدم همین پریشبی زنگ زخونم جلی باباتینا؟ آره جفنگ میگفت باباش اگه بو برد که با دخترها ارتباط تنگ ها تنگ دارد قیمه قرمش میکرد گفتم یعنی همش تلفنی؟ هم تلفنی هم توی جلساکی میاد یه وقت روی هم زیاد تحویرم میگیره. یه روز روشن داشت قمپاز در میکرد اما بیشتر منظورش این بود که من رو انتریک کند گفتم ایول حسن تا حالا باش قدمم زدی بیرون اینا رفتی؟ میبینید که پاری وقتها ضعف آدم از یک نقطه بیشتر است من توی هم تو شرایطی بودم حسن گفت دیگه می در نیار. ما هم کاریم. همه حرفامون هم کاریه خب مگه نگفتی شوهر نداره؟ خب چه دخلی داره؟ خواهر تو هم شوهر نداره با این حرفش زرتی قضیه را ناموسی کرده و من دیگه نتوانستم بحث را ادامه بدهم چون از حسن هیچ بعید نبود که قضیه را به مادرم هم بکشاند هرچه باشد مامان هم فعلا شوهر ندارد خودش ادامه داد آلا چی میگی؟ نظر چی بود؟ خوب بود؟ دختر جالبی بود. لاله رو که نمیگم جلسه دیروز رو میگم ول نمیکرد کرد که ول نمیکرد. کرد مرغش یک پا داشت گفتم بعدگ نبود اونجور تعریفی هم نبود بعد چند وقتی روش فکر کنم چند وقت چه می دانستم چند وقت دوباره گفتم به چند وقتی باید با خودم کنار بیام چیزهایی هست که ذهنه مشغول کرده خیزه حمله برداشت گفت خب دیروز سواناتو می پرسیدی تو هم دلت خوشه ها؟ دختر داشت مزخرف میبافت من چه سوالی میپرسیدم؟ با این حرف قصد داشتم نقطه زرفم را ماسمالی کنم فقط ای بکار این بود که صدای حسن در آمد. مزخرف؟ بله مزخرف چی چیش مزخرف بود؟ تو اصلا گوشتری ببینی دارن راجع به چی حرف میزنن؟ سر مثل چی انداخته بودی؟ پایین دشتی میلون بوندی که؟ اینجور لحنی که حسن برای حرف زدم پیش گرفته بود. هر آن ممکن بود به دعوای خیابانی تبدیل شود برای همین برقی وسط حرفش بریدم گوش نمیکردم پس نهپس میکردی معلومی که داشتم گوش میکردم پس داشتم چه غلطی میکردم اما حرفاش آدمو چندون میخکوب نمیکرد یعنی میگم اونجور که دلم بخواد جالب نبود اون که بدبختش هتک و که خودشو پاره میکرد کجاش جالب نبود خیلی جاش من اینه که سرجم چنگی به دل نمیزد میفهمی بیشتر داش می بافت. میدانست که دارم چرند میگویم برای همین دست از سرم بر نمیداشت گفت دست بردار بااست داری با اون آش کشکی میگیری اون کارش اینه تا حالا دست کم واسه 100 نفر این کارو توضیح داده حالا به تو که رسید شایمهی شد اینجور جور مسائل به آینده یادم مربوط میشه رفیق خب رنگرزی نیست که شاید لازم باشه حداقل ده تا جلسه دیگه برگزار بشه تا کارو به یه نتیجه برسونیم تو نوبت انقدر زود خسته بشی ما باش پسر هنوز حرفم تمام نشده بود که رک شد توی صورتم. سپش. پس بگو چی تو کلته میخوای بیا چرت بازی؟ حالا ج با چیپس و پنیر باشه دوست داری یا همینطور خشک و خالی. اصلش میخوای ساعتشو سر زور بذاریم که یه ناهارم بیافتی چطوره؟ بهتنکیرم خبر کن بیاد؟ خدایا اصلا نباید قضیه کافی شاب را اینقدر بزرگ میکرد آن مسئله چیزی بود که ممکن است برای هر کسی پیش بیاید گفتم؟ تو جدا منو چجوری شناختی هستن خیالت چشم دوره اون یه لغمه چیپسا و پنیره اصلا مگه تو حالا توی جلسه یه لیوان آب خاری دست آدم دادین با اون قانون های سرش را به سمت کوچهی ای رو به روی چرخانده بود و منم نبود داشت کجا رو میسکید با آرنج و پهلوش سدم و گفتم اصلا یه کار دیگه میکنیم این سری مهمون من میریم بهترین رستوران شهر هرگر چه خور به حساب من چیزی نگفت ها چی میگی؟ با نون اضافه حرف که بهش زدم هیچ تأثیر خوب یا بدی روش نگذاشت همانقدر برایش مسخره بود که انگار گفته باشم از فردا باید مثل بچه آدم زندگی کنم نه فقط هستن. کم کم دارم احساس میکنم که هنام کلن برای دروبری رنگی ندارد بارها بوده که حرف خیلی حسابیتر از این هم زده ولی هیچی به هیچی؟ دوباره گفتم چی شد حسن همجور نمیدارم داشت کجا رو نگاه میکرد. بازویش رو گرفتم و چون زیاد عصبی نشده بودم آرام تکان دادم. ها؟ نظر چیه؟ باز هم دیدم جواب نمیداد. واسم خب ولش کن منم زیاد اصراری ندارم. این را که گفتم تفلی سرش رو برگردند. درس برش داشته بود که مبادا جدی جدی زیر قضیه بزنم. خیلی وضعیت گندی شده بود. شرایط از من و حسن دو تا آدم عوضی ساخته بود که مدام همدیگر را سیاه می‌کرد. احتمال اینکه به خاطر این, این برخوردهای زشتمان رفته رفته از هم متنفر بشویم کم نبود اگر این قضیه لعنتی به هر شکلی تمام میشد قصد داشتم دوباره با حسن طرح دوستی بریزم گفت حالا که نمیدونم باید خبر بگیرم باید بهشون اطلاع بدم که وقت بهمون بدن خیلی سرش داشت با شکمسیری حرف میزد شکمسیری در میان بازاریابها اسم روشی است که می به آن آویزان شدن غیر محسوس هم گفته شود چند روز بعد از آن ماجرا که فهمیدم شکم سیری دقیقاً چیزی است خیلی غصم شد. این عوضی ها وقاحت را به نهایت رساندند. گفتم، باشه، بس خبر از تو. به موی تان قسم من خیلی شکم سیرتر حرف میزدم تا هستم. این پسر ذاتن مایه این کار باراند.